نلخص منها بسيط الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين والي وصحبه اجمعين اما بعد بحث الصلاح الان بحث عن ذات الاحكام بحث عقيده بحث عقيده قلت يمكن نسك ما مرتب دقيق كامل و ب... مفهوم واضح مطرحش بطونی بحث عقیده رو چون بحث عقیده بحث عاقبت آخره نگری اون چیزی که بعد کلمه و مون گره داشته باشه اون اعتقادی که پیامبران برای اون فرستاده شدن اون اعتقادی که براش نوح و مات ابراهیم و مات پیامبران از آدم تا محمد صلی الله علیه و وسلم 124 هزار پیانبر اومدن خونشون رکته شد پیانبری می اومد با سنگ زده می شود با نمیدونم با آتش سزنده می شود با سنگ سار می شود فلان می شود زحمت کشیدن برای حفظ اعتقاد برای این که ما حفظ بشیم برای اینکه که ما روستفید جلو به خداوند بیستیم از این بالاتر حق خدا خداوند چه بالاتر از این که ما اون چیزی که قلبمون نیازه به اون داره اونم خدابند یکتا درباره اش حرف و سخن بگیم درباره ذاتش درباره قدرش درباره حقش که خود رسول الله صلی الله علیه و سلام توصیه میکنن سوال میکنن معاذ بن جبل اتدری ما حق الله علیه حق خدا رو میدونی چیه حق خداوندی که متاسفانه خب از مجتمعاتمون از جامعه اگر درش با یک دید نگاه بکنیم میبینیم که این حق مونده جامعه همون نمیشنسی این حق رو حق خدا اینجاست که خدواند باره تعالی در قرآن اللہ جل نشان و ما قدر الله حق قدره قدر خدا را ندونستم قدر خدا را ندونستم وما قدر الله اون چنانی که خداون باید تعظیم بشه اون چنون که باید خداوند شناخته بشه خداوند رو نشنافتن آیا ما واقعا خدا را شناختیم حتی دینش رو فهمیدیم آیا واقعا برای خدا زحمت کشیدیم اون وحی که بر رسول الله نازل شده بود آیا واقعا خوندیمش مدارسش کردیم این حقی که در قلبمون این گره‌ای که با در قلبمون بسته بشه ما باید ببینیم چقدر مستم این گره چقدر اهمیت دادیم به این گرهنی که قلب مواد بهش بسته بشه, بشه. من دیرو صحبت کردم در مسجد ایمان پریشب یک جوون رو دیدم می میامد به مسجد دیدم گفتم ببخشم با لب خندان گفتم ببخش روی پیراهن سلیبه این حق رو گفتم روی پیراهن سلیبه گفت برو که دل باید صاف باشه وقت عصبانی از قاتون گفتم به خودم گفتم سبحان الله من طلب کارم یا اون طرف کاره اون داره مقدسات من را احانت میکنه یا من این سلیف یا نیچی خارج از درسته و من میخوام اهمیت این اتقاط رو بهتون برسونم بهتون بگم چقدر مردم غایبن از اون حیکل بنان هیچ اون زیارت کنان هیچ اون استخار کنان هیچ من این اشخاص را نمیخوام الان بگم یک جوان عادی ما به عنوان اشخاصی که خدا رو شناختیم خدا را میدونیم که حق برگردن من داره اون ایمانی که داریم می خوام زیر سوالش ببریم این جنون چرا اینجوری کار کرد چرا اینجوری سخنی گفت خیلی واقعا نراحت کننده یک صلیب نشانه اش چیه نشانه اولا اهانت به پیانبر خدا عیسی علی السلام اعتقاد ما در عیسی چیه صلیب کشته شده به صلیب کشانه شده خدا؟ خداست تثلیث یعنی چی این صلیب یعنی چی صلیب یعنی یک بت به خاطر همینی که بیان بذ اصلا میفرمونن چی این که نشانه قیامت اینه که چی عیسی وقتی که میاد یک سرو صلیب صلیب رو میشکنه چون بوته خدا را ستون میشناسن غیر از اون اهانت به عیسی علیه السلام غیر از اون اهانت اهانت به خدا هم هست چون اعتقاد در این دارم که این چیز دفع مکروه میکنه دفع zarar میکنه و جلب مصلحت میکنه رسول پرودی وقتش اون میاره این جوان بزدخ نمیدونه که این جرمه این اهانت به خدامنده و ما قدر الله حق قدر دل صاف بودن من گفتم دل وقتی که صاف باشه عمل بد باشه چی میشه انسان انسان میشه انسان میشه فرعون خلی وقان بده رسول الله الله علیه در اون حالته سخت بساتج ترؤون سكرات المار إن للموت السكرات قصدها أن ذاتج أو ضرميك وشرير بيشينيش إن للموت السكرات إن للموت السكرات اللهم رفيق الأعلى ضرمي يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد غمت وشيت غمت قدد الخضر وضره يقول اللهم لا تجعل قبري وطنًا يعبد من دون الله اللهم لا تجعل قبري وسمنا يعبدون من دون الله توشي غمه في قدره غمه اعتقاده داره ببینیم امت اسلام چقدر کم کاری کردن در بحث اعتقاد در اعتقاد به خدا خداوند این آیه را اگر می‌خوای بفهمی نگاه خودت بکن خودت چقدر خدا رو فهمیدی حالا چه برادرم مردمی که اصلا وقت خودشون برای علم شرعی علم قران و سنت نمی‌دند قدر الله حق قادر قدر خدا رو ندانستن چیکار کردن برای خدا جهاد کردن جهاد کجاست اگر در جامعه این بیس هزار نفری یک کشبر فرد ما در نظر بگیریم اگر قرار باشه هزار نفر داییه نباشد این جامعه به درد نمیخورد جامعه نیاز داره از هر بیس نفر هز دفر یک نفر مصلح باشه یک مسجدی کنان در افتر مزقیم بیس نفر پنجوان نفر هز یک آدم درستی میخوان اهل مسجد ما متاسفانه به شکل و نگاه میکنیم به امران مساجد، آبادی، مساجد از لحاظ ظاهر و شکل و بنیان نگاه میکنیم چه قدغن در چند در چند باشه و فلان باشه از سی ساخته بشه ولی به اون اشخاصی که اون مساجد رو تحویل بکنن، تحویل بگیرن، اون احتمال اون نداریم این اشخاص باید ساخته بشه. اگر قرار باشه این چنین اشخاص نباشن، بچه‌هامون چه کار بکنن؟ این مدارس چی بشه؟ خب اگر واقع، اگر واقع، اگر این چنین واقعا تلخی مدرس هستیم. آیا واقعاً میتونیم استقامت بکنیم در مقابلت دشمن آیا میتونیم جهاد را برپا بداریم آیا امت تبانه جهاد را دارد واقعا بعضی از آیات وقتی که انسان میخونه انسان عشق میریزه امروز خطبه اون آیهی که درش مطرح شده بود واقعا آیهی بود خطبه یکتشم میگم واقعا انسان عشق میریز بحث جنگ و بحث اون حسبون الله و نعم الوکیلی که صحابه گفتن توکلی که نفت به خدا داشتن نصرتی که به خدا دادن و خداوندم تعهد بر خودش گذاشته بود بر نصرت آنها چرا خداوند اونها رو نصرت کرد؟ چرا خداوند تعهد گذاشت که نصرت بده؟ انتن سر الله یا سر اینه سر اونها اونا نصرت دادن خدا حق خدا را اجرا کردن در ندیجه در نتیجه خدوانو قدرت ندیم ما اگر خدا رو قدرت ندیم از حق خدا را از حق از حق خدا دفاعات دفاع نکونیم وای بر ما دیگه جهادی که برپا نمیشه مثل الان حالی که آماده داریم هیچ بدبخت و خا رو شکست خورده نمیشه بس باید حمت ها بالا بره باید نفس ها عمیق بشه باید چشما باز بشه گوش ها باز بشه احساس مسئولیت کنیم. اگر ما احتسن داشته باشیم که اینو کنیم که احتسن داشته باشیم بکنه که از وقت خودش حاضر به خدا بده و بدونیم اگر سنگ تمام بس اگر ثنیت قدمو رو حذف کنیم خداوند ما رو حفظ میکنه یا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهاك احفظ الله يحفظك خدا رو حفظ کرده تو و ما را سطر بکنه در دعوتمون به ما توفیق بده ما بده از دعوتمون و از ما خودمونم هم دفاع بکنه خب این فقط محقدمه در بحث اهمیت این بحث عقیده چقدر مهمه چقد بيشتر و چقدر گمنامه در جامعه و چقدر نیازه خودتون بیشتر و بیشتر پی برید که چقدر واقعا ما عقبی بحث عقیده از بحث ایمان آغاز میشه چرا بحث ایمان را گرفتیم بخت ایمان رو گرفتیم به خاطر حدیث السلام به خاطر حق شرف خدا به خاطر منزلت خدا خدا بخت ایمان رو گرفتیم جبرئیل گفت مال ما ایمان تؤمن بالله اسبحت ایمان و ایمان به خدا با تعادل صحبت بکنیم بخت ایمان و بخت توحید ان تؤمن بالله یعنی توحید علاوه برات هم ایمان رو بررسی میکنین همین همین این توحیده نیشه. اولین چیزی که جبرعیل پا به پای رسول الله می نشینه و دستای خودشون رو روی پاهای رسول الله می و سوال می کنن من ایمان از ایمان سوال می کنن چرا از ایمان سوال می کنن؟ چرا نگفتن که اولاق چیه؟ چرا نگفتن از چیه؟ چرا نگفتن شطور چیه؟ چرا گفتن ایمان؟ چون ایمان یک حقیقت شرعی داره الحیاه من ال ایمان الايمان بضع و 70 شعبه ادناها اعلاها شهاده أن لا اله الا الله ادناها ايماتت الاذ عن طريق رميت بحث ما بحثي كذا ان حديثا ايمان اعتقد عندي شعبه داره شراي ميجي اعتقد عندي شعبه داره بعد بعد دار بعدون بحث شهادتين رو بياره ميخاد انو بيقولك ايمان هيك لفظ مقصد مقصدش لغوی نیست مقصود از این ایمان مقصود لغوی نیست حالا ما بیان بررسیب کنیم این ایمان ایمان و بین لغوی ها و نصوص قرآن و سنت بررسی بکنیم یعنی در اصطلاح ببینیم چیه و در لغت چیه بحث ایمان در لغت اونچنان که علمه لغت میگن مس ابن اسير دار نهاي في غير الحديث وابو عبيد قاسم بن سلام وجوهري در الصفاح وغيره از العلماء ان كثير من قالوا ان الايمان مترادف بالتصديق الايمان دلونه يعني تصديق ما مخام الان بڕتی بکنی ببینید واقعا هر چه اینا درست ایمان واقعا تصدیقه یا خیر حالا میاد که چه قماکیوام میگه شناخت اینکه ایمان یا تصدیق یا نه میاد بحثش میاد که چرا ما این بحثو آغاز کردیم ما از صفر شروع میکنیم ببینید از تیکه به تیکه ما میخوام در عزم و باثیرت باشیم قل هذه سابیل الاجر الی الله علی بصیره ما میخوام با بصیرت باشیم ما میگیم در جواب لغوی ها حرفتون درست ایمان مترادف هست با تصدیق لیکن تصدیق ترادف تام و کامل نداره هیچ هیچ وقت خیلی کم میشه که در لغت عربی دو تا کلمه داشته باشیم از هر لحاظ با هم مترادف باشه مثل هم باشه ما میگیم از لحاظ لغت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 کسی میگه؟ کسی نمیگه من ایمان دارم به, به عبری. میگه من تحطیقش دارم باور دارم. قبول دارم که ابری بالا آزمان هست. صدق به کار اینجاست که من میگیم که این شخص دروب دو دوست یا راست دوید. من ضد ایمان کفره ولی ضد تصدیق تکذیبه. من اگر گفتم بالا ابره به من میگیم کافری؟ یا دروب بفتیم. به این میگید درو گفتی نمیگید کافری ولی اگر گفتم که من ایمان دارم به فرشتگان یا ایمان دارم به خدا و من برعکس اون عمل کردم به میگید کافر یا میگید مکذف این کافر کافر شدی دیگه با اون تکذیبم کافر شدن سه بومه خود لبز ایمان تن به تنهایی متعدی نمیشه به تنهایی بر چیز اطلاق نمیشه باید یک پسفند و پیشفند دیگری داشته باشه مثلا ایمان بگیم آمن تو ولی در تصدیق بگیم فضاق تو میگیم آمن تو میشه گفت آمن تو ایمان خود به خودش به تنهایی متعددی نمیشه باید بگید آمن تو بی. نمیشه گفت آمن تو آمن تو باید بگیم آمن تو بیه پس ستا فرق احساسی ایمان بر غیبیات افلاق میشه ولی تصدیق نه ایمان زدش تکزیبه ولی تصدیق زدش بگاشید ایمان زدش کفره ولی تصدیق زدش کذب و دروغ و تکزیبه و و من گفتیم ایمان خودش به تنهایی متعدی نمیشه اطلاق نمیشه بلکه با پسانه یا پیشفندی دیگری ولی تصدیق خودش متعدی میشه اطلاق میشه با خودش این ستا فرق اساسی بین ایمان و تصدیق در لغت پس حالا ما در تعریف لغوی حالا خلاصه خلاص یه این فرووق که گفتیم چی میشه بگیم در جمعندی فرق بین ایمان و تصیل ایمان چی اینه ایمان میشه تصدیق همراه اطمینان همراه اقرار به غیبیات همراه اعتماد ایمان شامل چهره تصدیق با یک ایمان به غیبیات تصدیق با یک اعتماد اطمینان محکم در خود لغت ایمان شامل چهره است لعله صدق پس شما الان فهمیدی که اونهایی که اومدن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 احمد این بحث در اینه که چهار تا دانشگاه ها درس میخونند اون جوان تو خونه نشسته اون بچه مدرسه جلو به تیلویزیون نشسته الهی قمشه ای و نوار سروش رو گوش میده میگه ایمان اینی شنا الان ما ببینیم ببینیم این بدبختی و این چه چی چیز بار میاره جامعه چه کار میکنه و خود اون شخص اعتقادی اتقادی درش نفوس بیدا میکنه اونم بخاطر چی؟ جهل به لغت عربی ندون السنه مداخل و مخارج لغت عربی سبب شده چه گمراهی های عمیقی در خود امت ایجاد بشه چه ان حرافت عقدی پیش بیاد چه ان حرافت نمیدونم فقهی پیش بیاد همش به خاطر اینکه الفاظ خدا بر حسب مراد خدا بلکه بر حسب مراد اعمی لغتا ما نفهمیدیم بر حسب لغت عربی هم نفهمیدیم بر حسب لغت عربی هم ما نفهمیدیم نه اینکه تنها بر حسب مفهوم شرعی چون بس ما پنگچاریه ایمان واضحه ایمان در شعر ما چی فهمیدیم در خود حدیث ما نگاه میکنیم ایمان و صبر و نشعه به اعلاها اله الله بولاترین اشیه شهادت نقطه به زبان بعدناها پایین ترین اشیه ایمان تسول اذعن الصریح و ذات عمل بکنه نماز بکنه روزه بگیره این عمل جوارحه و بعد سبو میشه والحیاه شعبه من الايمان حیا چی که در قلب است چیز در یک الله صلی الله علیه و اشاره کردند که شامل مفهوم اصطلاحی کلمه ایمان به قلب اعمال جوارح و نطق زبان این ایمان اصطلاحی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 برادران یوسف به یعقوب چینین گفتند گفتن. و ما انت بی مؤمنین لنا علمای تفسیرم ابن کتیز از جنوب دیانها میگوید ای انت مما انت بی مصدق لنا تو برا تصدیق نمی کن آیا این مفهومی که از این آیه برداشت کردند در آیه سور یوسف از حرف برادران یوسف به یعقوب و ما انت بی مؤمن لنا آیا به معنای تصدیق درست هست یا نه خیر اشتباه اون امری که اِلّه اردن در نزد فدراشون وقتی که اوردن اون پیراهنشون با خونه اون گوسن آیا امر غیبی بود یا امر حسی آیا یعقوب حضور داشت که اونجا را ببینه که بعد دیگه شما دروغ گفتید بعد اینا گفتن که تو به ما قبول نداری ما تصدیق نمی‌کنی یا اینکه اینجا بحث غیبی هست و بحث سراتر از تصدیقه بحث سراتر از تصدیقه بحث تصدیقه همراه اعتماده چرا؟ چون یعکوب تو زور نداشت گسفندو ندید اون بعد اون گربی که گفتن فسرتو خورده یوسفو خورده اون گربو ندیده و از علم غیب هم باخبر نیست پیام از علم با خبر نیست چطوره که بعضی از علم غیب غیر از پیام برا نه علم غیب باخبره قصه یوسف یاد بگیریم و بگیریم این قصه ها جلوه چشمون باشه عبرت نحنو نقص علیکه احسن القصد برای چیز؟ برای عبرت اول سولی یوسف با همین بحث آغاد بشه عبرت یعفوب از علم غیب و خبر نیست یعفوب فرزن نمچنین بهش قصام میدن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 که در سیاق خود آیه در خود جمله یعنی بر حد اون جمله شنافت میشه مثلا در آیه مجادله 22 مجادله 22 آیه قبل یوسف بود ایفته این آیه مجادله 22 چینین داریم خداون میفرمایند فرماین اولائی که کتب فی قلوبهم الیمان اولائی که کتب فی قلوبهم الیمان در اینجا مقصد چیه؟ مقصد اعتقاد og utviket, forstå derasier os sa at du h في at du har en utviket oui, utviket man berget like, utviket men utviket at put itu utviket er utviket utviket utviket utviket utviket utviket og だahe man på signal salaries utviket utviket utviket utviket utviket utviket utviket utviket hurs utviket utviket utviket وما كان الله ليضيع ايمانك وما كان الله ليضيع ايمانكم بقرتها ثلاثه انجا بحثت وما كان ما بحثت كمسلمين الربع بيت النقد نماز میخوندن نماز خنده بودند و تقبل وما كان الله ليضيع ايمانكم خداوند اون اعمالی که انجام داده بودید، اون نمازهایی که به سوی بهت المغزت خونده بودی ضایع نخواهد کرد. از اونها شما را بی بیپاداش نخواهد گذاشت بیپاداشت را نمی کند خداوند. پس بحث ایمان در اینجا بر حسن سیاه و سبب نزول ایمان در اینجا معنای عمل خاصیه و شاید همه معنای عمل عامیه هم بیاده. مجادله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان عمل عام مطلق عام مطلق عمل قلبي از محبات أصدق يقين وهم شايداً بياد بمعناه مجمل شرائع دين يعني كل دين بمعناه دين بياد ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان تمامی شریعت اسلامی علمی و عملی رسول الله از اون آشکار یا رسول الله اون رو نمی دونستن تا این که خدا بند وحفرمودن و وحفیردن بر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و, و جسیقیت دادن آیه شورا پنجه هدو ما کنت تدریم الکتاب ولل ایمان ایمان در اجاب معنای دین یا شریعت في حديثنا أيضًا ، حديث يقولون الإيمان بضل عمد ستون شعبه يبدو عمد سبعه بضل عمد ستون شعبه حديث بخاريه حديث شماريه النوح ومسلم سي وفنج بخاريه نوح ومسلم سي وفنج في هذه حديثة ، إيمان بمعنى الدين وشريعة اجمع أهل سنة در مفهوم اصطلاحی کلمه ایمان همان که گفته شد با اتفاق به قلب زبان عمل جوارح إن اجماع را امام شافعی الله نق می‌کند اجماع اهل سنت امام شافعی می‌گویند اجمع الصحابه و من بعده اجمع الصحابه بعدهم من التابعین ومن من من اهل العلم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 احمد و غیره نقشده همانگونی که امام ابعبید قاسب بن سلام در کتاب ایمانش نخمی کنه از این علمان امام ابعبید قاسب بن سلام کتاب ایمانش با تحقیق آلبانی اینطوری بر بگردید کتاب ایمانش خلاطه مباحث ایمان در رد مرجعه و خباره چه دلی؟ الاوزاید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 بولا ثری رتبهش کمال مستحبه کسی که اصل ایمان را داشته باشه و کمال واجب را انجام بده و بر آن بیفزاید از سنت ها و کارهای دیگر اصل ایمان و کمال واجب را داشته باشه اصل ایمان و کمال کمال واجب الان کمال واجب میاد که چیه؟ و بر آن سنت ها و نوافل بیفضاید بر اون اصل ایمان و کمال واجبش سنت ها و نوافل بیفضاید کمال واجب چیه؟ کمال واجب همون اعرابی یاد دارید وقتی که من نظر رسول الله صلی اللہ علیه وسلم گفتن که بر من چی هست؟ گفتن نماز و روزه و فلان گفتن که اگر من همین کاران رو انجام بدم بهشتی هستم افلاحه این صدق اگر راست کف همانطور که برش واجبه انجام داد مفلخ میشه رستگار خواهد شد بهشتی خواهد شد کمال واجبه اون چیزی که واجبه به طور احسن عدا بو کنی بدون نقص از تمامی محرمات دور بشه کمال واجب نقص کمال واجب نقصان کمال واجب انسان اصل ایمان را داشته باشه لیکه تهلنگار باشه در نماز کندنش در انجام ساعاتش گناه انجام بده که اکثر ما بیشتر در این قسمیم نقصان کمال واجه دلیلم از این آیه هست از سوری فاتر ایتی و دو چینین الله جلی شانو ثم اورثنا الكتاب الَّذین اصطفینا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الَّذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم للنفس نگاه بکنید تحت مؤمنین عبادنا صفینا من عبادنا و این در رد خوارج در رد کسانی که به مجرد مؤمن رو تکفیر میکنند ثم اورثنا الكتاب الذين صفینا من عبادنا فمنهم ظالم للنفس از جمله آنها کسانی هست که خودشان ظلم کردند یعنی اصل ایمان و کمال واجب را دارند و منهم مقتصد از اونها مقتصدن اقتصاد کردن بر اون چیزی که برشون واجبه و بر اون چیزی که حرام ازش دوری بکنن، فرار بکنن و منهم سابق بالخیرات باذن الله واذنها کسانی هستند که شیک کمال مستحب را دارند بر اون کمال واجبهشون و اثر ایمانشون ابذودن و مستحبات رو انجام دادن و منهم سابق بالخیرات اذنها کسانی هستند ك... که قدر و پیشه گرفتن در انجام کارهای نیک کب قدر عدله بر تعریف اصطلاحی ایمان بگیم یا این موکل بکنیم در سایانده بگیم بگیم <تصفيق> کمال آل کمال دو هم مقتصد. مقتصد خودش از اقتصاد میاد از اقتصاد یعنی اکتفا اکتفا بکنه بران چه که برش واجبه و دوری و پرهیز بکنه از آن چه که برش حرامه محرمات رو انجام نده واجبات رو انجام بده این میشه مقتصد و مقتصد اکتفا بکنه بر انجام دادن اطاعات و دوری از فرہیزه محرمات خب حالا بیام به بحث ادله بر شعب ایمان یا ارکان ایمان یا تعریف اصطلاحی ایمان تعریف اصطلاحی ایمان ادله بر تعریف اصطلاحی ایمان اولا اعتقاد قلب یا تصدیق نفس اعتقاد قلب و تصدیق قلبی ذات سوره الحجرات آيه 15 حجرات 15 انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتكبوا انما المؤمنون الذين امنوا الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتكبوا درستی که مؤمنان کسانی است که الله و رسولش آوردند و بس شك زدش يقين وتصديق عرفت شك شك زدش يقين وتصديقه بس اين آيه دلالت بر صدق قلبي مؤمنان داره مؤمنان حقيقي كساني هستن كه صادقانه‌ ایمان به الله و رسولش دارن والذى جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون صفات مؤمنه تصديق به والذى جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون كزي كده ست فورورد كيه الله دله شانه بس تصديق از ايمانه بنص والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون طب ايه تفسير قلب كشامل اعتقاد القلب ميمن اعمال القلب اعمال قلب اعمال قلب اعمال قلب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 حاصل میشه در این آیه متابقت داره به این مسئله اینما المؤمنون الذین ذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا طولیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و على ربهم یتوکلون پس ذکر خدایی که سبب فجل میشه سبب ترس میشه ترس مومنان و بازگشت مومنان به خدا میشه و توکل از ایمانه چون میگه این نمل مومنون درستی که مومنان کسانی هستند که در قبال آیات خداچینین میشن و به خدا توکل دارن و توکلی که در این آیه آمده ترسی که در این آیه آمده و جلی که در این آیه آمده همش چیه؟ اعمال قلبه لزياده عدل اعمال القلب زياده ايات البقره الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونه كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله حظه ايمانه برغمده بايمان انسان غير خدا وبرتر دونسنون حبش خدا عن خدا زين مش شکر قدر ایمان به خدا آورده به خاطر همین مشتاق شده و الذين امنوا اشد تصحفا لله مؤمنا حقیقی حبشون نسبت به بیشتره پس محبت خداوند از ایمانه همین حدیثی که خوندید انما الاعمال بالنیات را بر اساس نیات گذاشته یعنی بر اساس اون نیتی که دارید شما ثواب ببینید عجب ببینید پاداش ببینید پس نیت میشه چی؟ عمل عمل قلب سه و من نولا سه و من میخواهی بگید یا دو و من نداره که جز اعمال جواره چون بعض از علماء در تعریف استلاحیه ایمان میگن ایمان قول او عمل و اعتقاد یا نیاد و, و بعضی دیگر میگن ایمان شامل قول قلب و عمل قلب و عمل جوارح با نطق یا همون نطقه به زبان خب بس الان قول قلب رو داشتیم عمل قلب رو داشتیم میمون الان اعمال الجوارح تنطق بالزبان تنطق بالزبان ا حديث زياده أن انه قاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله عمره انه قاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله فاحنا شنو نقولوا بالله قولوا انسان تو شهادته انك وارد الاسلام نمشي اما اعمال الجوارح زیاده و كان الله ليضيع ايمانك و همچنین ایمان در 73 شعبه عللا ساده الله دللات همبر اعمال جبارح داره برامشین دنباله آیه ای که از انفال تراوت شد انما المؤمنون دن آیا الذي وقمون الصله انعمل المؤمنون تا آخر یاد الذي یقيمون صله و من م را زاقنا هم ی فکر کوون الذي یوقمون پس مؤومان حقی سانیان ک چېی نماز میکنن و ذکات مالشونو میدن صدق میدن پس ذکات دادن نماز خووندن هم کهی جز جز ایمان جز اعمال چهباری که جز ایمانه پس خلاصه خلاصه این بحث چی میشه خلاصه این بحث اینکه ایمان تعقیده و قوله به نیت اعتقاد و قول به عمل کسی سؤالی داشته باشه do ya taqsim mikonam yeki a'mal adurni ki a'mal biruni a'mal adurni insan ke shamil-e amal-e qalb va qaul-e qalb va a'mal biruni insan nutq-e be zaban va amal Faaz Subhanaka Allahumma bihamdika Subhanallahi wa bihamdika astaghfiruka